بسم الله الرحمن الرحیم برامی نهایت بارش سوگند به با آن فرشتگانی که به گونه منظم صف کشیدهاند و باز سوگند به با آنانی که به گونه نیرومند انسان را از اعمال ناشایست باز می‌دارند و باز سوگند به با آنانی که ذکر را تلاوت می‌کنند بیگمان گمان خدای شما یکتاست فروردگار آسمان ها و زمین و آنچه درمیان آنهاست و فروردگار مشقه ها ما بگماند از آسمان را بعضیور ستارگان بیاراستید و نیز برای نگهداری از هر شیطان سرکش از این رو نمیتوانند به سخنان عالم بالا گوش فرادهند و از هر سو با تیرهای شهابی زده می شوند تارانده شوند و برایشان عذاب همیشه گیست جز آنکه که خبر ربودنی را برو باید و دردم تیر شهابی سوزانی او را تعقیب کند و از ایشان بپرس که آیا آفرینش اینها دشوارتر است یا چیزهای دیگری را که آفریده ایم بیگمان ایشان را از گل چسبیده آفریده ایم بلکه تو در شگفتی و آنها تمسخور میورسند و هنگامی که پند شوند پند نمی گیرند و چون نشانه را ببینند، تمس می کنند و می گویند این جز جادوی آشکاری نیست آیا هنگامی که مردیم خاک شدیم و مشت استخان گردیدیم آیا باز برانگیخته می شویم؟ یا پدران نخستین ما برانگیخته می شوند؟ بگو بله و خواری و زلت برانگیخته می شوید این صرف صدای محیب است ایشان ناگاه منظره ای قیامت را میبینند و میگویند وای برما این است روز جزا به ایشان گفته میشود این همان روز فیصله است روزی که آن را تکذیب میکردید ستمگاران، همسران، همکاران و همردیفان و معبودانشان را جمع کنید چیزهای را که جز خدا می‌پرستیدند، پس ایشان را به راه دوزخ سوق دهید و ایشان را نگه دارید حقاک ایشان مسئولند و شما را چی شده که یک دیگر را کمک نمی کنید بلکه ایشان در آن روز تسلیم شونده و به یکدیگر رو آوردند و از هم می پرسیدند بعض به بعضی دیگر می گفتند شما بودید که ظاهرا با خیرخواهی خواهی پیش ما می آمدید گفتند بلکه شما خود مسلمان نبودید و ما با شما هیچ تسلطی نداشتیم بلکه شما خود مردم سرکش بودید. اکنون بر ما اجرای حکم پروردگار ما لازم شد و یقینا عذاب را چشیدنی هستیم شما را گمراه کردیم حقا که ما گمراه بودیم پس در این روز ایشان در عذاب شریکند. کردیم بگمان ما با مجرمان به این گونه معامله می آره ایشان چنین بودند؟ چون به آنها گفته می شد جز خدا معبودی نیست تکبر می و می گویند آیا خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه ترک این درست نیست بلکه او به حق آمده است و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است بگمان شما عذاب درد ناکی را چشیدنی هستید و جز در برابر اعمالی که مرتکب می شدید مجازات نمی شدید مگر بندگان مخلص خداوند از عذاب برکنارند. این گروه برای ایشان روزی معلومی مقرر است انواع میوه ها و ایشان محترمند در بهشت های سرشار از نعمت بر تخت های روبروی یک دیگر قرار دارند دم آدم جامی از شراب صافی با ایشان پیش کرده می شود شراب صفید روشن لذت بخش برای نوشندگان ندر آن سرگیرانیست و نه هم ایشان به خود می شود. و از همسران پاک دامن برخوردارن. که نگاه خود را از دیدن بیگانه نگاه داشته و چشمان درشت و باه دارند در پاکیزگی و صفایی همچون تخم اند که زیر سینه مرغ محفوظ مانده است در این حال برخی رو برخی دیگر آورده پرسش کنان به صحبت خود دوام می دهند؟ یکی از آنها میگوید من در دنیا هم میشین دراشتم که به من می گفت آیا تو از تصدیق کنندگان این سخن هستی که چون بیمیریم و خاک و مشت استخوان شویم جزا داده خواهیم شد پس میگوید آیا میخواهید خواهید به او سری بکشید پس به او سری می او را در وسط دوزخ می بیند می گوید به خدا که نزدیک بود مرا نیز به حلاکت بیندازی اگر فضل پروردگار من نمی بود من نیز یقینا در میان احزار شدگان عذاب می بودم آیا درست است که ما مردنی نیستیم جز مرگ اول ما آری و ما مجازات هم نمی شدیم بگمان این همان پیروزی بزرگ است برای دستیابی به این چنین پیروزی باید تلاش کنندگان بکشند آیا این نعمت ها به حیث مهمانی بهتر است یا درختی زکوم؟ بگمان این درخت زکوم را اقوبت برای ستمگاران گاران دهیم این درختی است که در قعر دوزخ می روید شگوفه های آن مانند کلاهای شیطان هاست براستی که ایشان از آن می خورند و با آن های خود را پر می کنند و درپای آن برای ایشان آمیختنی است از آب جوشان به حیث نوشیدنی سپس باز بازگشت ایشان به دوزخ یا یقینا ایشان پدران خیش را گمراه یافتند و اکنون ایشان بر نقش قدم آنها می و یقینا پیش از ایشان نیز بس از پیشینیان گمراه شدند واقعا درمیانشان بیم دهندگانی را فرستادی پس بیبین سرنوشت بیم شدگان چی بود مگر بندگان مخلص خدا. بار نوح به حضور ما دعا کرد و ما نیک اجابت کنیم دید او و کسانش را از بلیه بزرگ نجات دادیم و تنها دودمان او هم ایشان را باقی گذاشتیم. و بر او در میان آیندگان این رسم را گذاشتیم که سلام بر نوح در جهانیان آره ما به این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. بگمان او از بندگان مؤمن ماست سپس دیگران را غرف گردانیدیم بگمان ابراهیم از پیروان او بود چون با قلب سلیم به حضور پروردگار خیش آمد انگامی که به پدر و قوم خود گفت چی چیز را می آیا جز خدا معبودان دروغین را می جوید؟ پس گمان شما به پروردگار عالمیان چیست سپس برای چارهجویی نگاهی به ستارگان کرد و گفت واقعا بیمارم آنگاه از وای روی برتافتند در حالی که او را پشت سر گذاشتند او با استفاده از این فرصت به سوی معبودانشان رفت و با اشاره به خوردنی هایی که آنجا بود گفت چرا نمی خورید؟ شما را چی شده که حرفی نمی زنید؟ و در این حال بر شان ضربه شدید با دست راست وارد کرد چون این حال را دریافتند به سوی او با شتاب روی آوردند گفت آیا چیزی را که خود می تراشید پرستش می کنید؟ در حالی که خدا هم شما و هم چیزی را که میسازید آفریده است. قومش گفتند برای او بنای یعنی آتشخانه ای بسازید و سپس او را در آن انبار آتش بیافکنید. به این ترتیب خواستند طریق نابلگی او را بریزند. ولی ما ایشان را سخت ناکام ساختیم. و گفت راه هجرت را پیش میگیرم و به سوی پروردگار خود میروم او خود مرا رهیاب خواهد ساخت چون به هجرتگاه خیش رسید با تذرو گفت پروردگارم به من فرزندی از زمره نیکوکاران عنایت کن در این حال ما به او فرزندی بردباری را مجد دادیم چون به سن رسید که با او در تلاش و تکاپوش هم می کرد. گفت ای و بخواب می بینم که تو را می کنم پس بیبین که رأی تو چیست گفت ای پدرم آنچه به تو امر می شود انجام دی بخواست که خدا مرا از شکی بایان خواهی یافت چون به این حکم تندر دادند او را به پیشانی او به زمین انداخت و به او ندا کردیم ای ابراهیم خوابی را که دیدی واکن راست کردی حقاک نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. دهیم بگمان این رویداد داد آزمایش آشکاری بود و گوسفند بزرگ را فدای او کردیم و بر او در نسلهای بعدی این را گذاشتیم که سلام بر ابراهیم حقاک نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. دهیم بگمان او از بندگان مؤمن ماست و او را به اسحاق پیانبر صالح مجدد دادیم بر او و بر اسحاق برکت نهادیم و از دودمانشان برخی نیکوکار و برخی هم بر خیش به گونه آشکار ستنپیشهاند بیگمان بر موسا و هارون منت گذاشتیم و ایشان و قومشان را از آن اندوه بزرگ نجات دادیم ایشان را یاری دادیم و در نتیجه بر دشمنان خود پیروز شدند و به ایشان کتاب روشن را دادیم و ایشان را راه راست هدایت کردیم و برای ایشان در نسلهای بعدی این را گذاشتیم که سلام بر موسی و هارون حتی که نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. ایشان واقعا از بندگان مؤمن ما هستند و بیگمان الیاس از پیامبران بود چون با قوم خود گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ آیا بعل را می پرستید؟ و پرستش نیکوترین آفرینندگان را می گذارید؟ خدای را که پروردگار شما و پروردگار پدران نخوستین شماست پس او را تکذیب کردند. و یقینا ایشان برای عذاب احضار شدنی اند جز بندگان مخلص خدا که تکذیب نکردند بر او در نسلهای بعدی این را گذاشتیم که سلام بر الیارسین حقاک نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم که او از بندگان مؤمن ماست بیگمان و لوت از پیامبران بود چون او و اهلش همه را نجات دادیم جز پیرزالی را که در زمره باقی بود سپس دیگران را نابود کردیم شما بر خرابه های ایشان صبح گاهان می و در شب نیست آیا نمیاندیشی و بگمان یونوس از پیامبران است چون با کشتی مشهون از بار و نفر گریخ و با اهل کشتی قرآن انداخت و از لغزیدگان بود او را ماهی بزرگ بلعید و او ملامت بود و اگر او به تسبیح یعنی یاد خدا مشغول نمی بود گمان تا روزی رستاخیز در شکم آن باکی می ماند پس او را به دشتی به آب و گیاه انداختیم و او بیمار بود بر او بطه از کدو را رویاندیم و او را به سوی صد هزار نفر یا بیشتر از آن فرستادیم پس ایمان آوردند و ایشان را تا مدتی از مواهب زندگی بحرور ساختیم. باری از مشرکان بپرس. آیا درست است که پروردگارت دخترانی دارد و ایشان پسرانی؟ یا ما فرشتگان را زن و ایشان حاضر بودند؟ ملتفت باشید، حتما ایشان به اساس اختراع خیش میگویند، خدا فرزند آورد و ایشان واقعا دروغ گویند. آیا خدا دختران را بر پسران برگزیده شما را چی شده؟ چی گونه حکم می کنید؟ پس آیا نمی یا دلیل روشنی دارید؟ پس همان کتاب خیش را که با شما وحی آمده بیاورید اگر راست می گوید. و بین خداوند و بین جینیان نسب قرار دادند در حالی که جینیان می که ایشان حتما برای عذاب احزار می شود. خداوند پاک است از چیزهایی که با او نسبت میدهند مگر بندگان مخلص خدا که از این عذاب برکنارند پس نه شما و نه هم چیزی که آن را می‌پرستید هرگز برخلاف اراده ای او کسی را فتن انگیزی کرده نمی‌توانند. جز کسی را که داخل شوینده دوزه رشتگان میگویند هیچ یک از ما نیست مگر آنکه برای او مقام معین است و بیگمان ما در صحفهای منظم قرار داریم و این ماییم که خدا را به پاکی یاد می کنیم ایشان یعنی مشتکان قریش بیگمان می اگر نزد ما نیست کتابی از پیشینیان می بود بیگمان از بندگان برگزیده خدا می بودیم اما حالا که قرآن به ایشان آمد از آن انکار کردند ولی زودی خواهند فهمید و بگمان حکم ما در مورد بندگان مرسل ما در ازل صادر شده است که واقعا هم ایشانند پیروزمند و بگمان لشکر ما هم ایشانند غالب پس تو از ایشان تا مدت روی برتاب و حال ایشان را بیبین و ایشان نیز زودی خواهند دید آیا عذاب ما را به شتاب می طلبند؟ چون به دیارشان عذاب نازل شود پس بعد از صبح گاهان بیم داده شدگان و از ایشان تا مدتی روی برتاب و حالشان را بیبین و ایشان نیز به زودی خواهند دید پاکس کس پروردگار تو پروردگار صاحب عزت از وزفهایی که با او نسبت می دهند. و سلام بر پیامبران و ستایش خدای راز پروردگار جهانیان